فصل 14. در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید او به ملازمان خود گفت این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می‌رسد زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود. چون یحیا به هیرودیس گفته بود تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی. هیرودیس میخواست او را بکشد اما از مردم میترسید. زیرا در نظر مردم یحیا یک پیامبر بود. ولی در موقع جشن تولد هیرودیس دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید، و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هر هرچه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادرش گفت سر یحیای تعمید دهنده را همین حالا در داخل یک سینی به من بده. پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد. ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانانش دستور داد که سر یحیا را به او بدهند. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیا را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک سینی بود آورده به دختر دادن و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیا آمده بدن او را بردن و آن را به خاک سپردند پس از آن آنها به نزد ایسا رفتن و به او خبر داد. یثا وقتی این خبر را شنید آنجا را ترک کرد و با به جای خلوتی رفت اما مردم با خبر شده دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتند همین که ایسا به ساحل رسید جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد اصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است روس هم با رسیده. رسید مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند. عیسی به ایشان گفت احتیاجی نیست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهید. شاگردان گفتند ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم. ایسا در جواب فرمود آنها را پیش من بیاورید و پس از آن به مردم دستور داد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه پنج نان و دو ماهی را گرفته، به آسمان نگاه کرد و خدا را شک نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادن. همه خوردن و سیر شدن و از خورده های باقی که شاگردان جمع کردند دوازده زنبیل بزرگ پر شد. غیر از زنان و کودکان پنج هزار مرد خوراک خوردن. آنگاه عیسی شاگردان را واداد تا سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده. بین ساعت سه و شش صبح، عیسی در حالی که بر روی دریا قدم میزد، نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می رود، انقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند: این یک شبه است. عیسی فوراً به ایشان گفت دل قوی داری، من هستم، نترسی. پتروس گفت ای خداوند اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم عیسی فرمود بیا پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی را. اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق میشد، فریاد زد خداوند نجاتم بده عیسی فورا رسید و دست او را گرفته گفت ای کم ایمان چرا شک کردی آنها سوار قایق شدن و باد قچ شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده میگفتند تو واقعا پسر خدا هستی آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند به محض اینکه مردم آن محل عیسا را شناختند کسانی را به تمام آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن ردای او را لمس نمایند و هر که آن را لمس میکرد کاملا شفا یافت.